آش نیخ روزی روزگاری مرد مسافری داشت از وسط جنگلی رد می شود. فاصله اون تا شهر بعدی انقدر زیاد بود که امید چندانی نداشت که بتونه تا قبل از اینکه شب بشه سرپناهی پیدا کنه. که ناگهان چشمش به نوری افتاد که از لابلای درختان معلوم بود. کمی که جلوتر رفت، کلبه ای رو دید که توی اون آتیش روی اجاق میسوخت. مرد با خودش گفت چه حالی داره که اگه آدم بتونه خودش رو کنار این اجاق گرم کنه و یه چیزی هم به دندون بکشه. همون موقع پیرزنی رو دید که از کلبه خارج شد و به طرف اون اومد. مرد گفت شب بخیر زن جواب داد شب تو هم بخیر بگو ببینم از کجا میای؟ به کجا میری؟ خونه به جواب داد از جنوب خورشید و شرق ماه میام. دارم برمیگردم برم خونه چون به جز این طرفا هر جای دیگه ای از جهان را که بگی من گشتم زن گفت پس تو باید برای خودت یه پا جهانگرد باشی. حالا اینجا چی کار میکنی؟ دنبال یه سرپناه برای شبم بودم. زن گفت. فکرشو میکردم. اما تو باید فورا از اینجا بری. بگو چرا. چون شوهرم خونه نیست. خونه منم مهمون خونه نیست. مرد مسافر گفت. خانوم نازنی. خوب نیست انقدر بد اخلاق و سنگ دل باشی. هر دوی ما آدمی زادیم. باید به همدیگه کمک کنیم. زن جواب داد به همدیگه کمک کنیم. کمک؟ تو تا حالا چنین چیزی به گوشت خورده؟ تو فکر میکنی کسی دست منو رو که من بخوام دست تو رو بگیرم؟ تازه. دریق از قضیه کف دست نون که توی خونه داشته باشم. نه پدر من، برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. اما مرد مسافر از اونجور آدم که فکر می کنید نبود. برای اون شکست معنایی نداشت. هرچند پیرزن تا جایی که میتونست تونست شکایت رو گرگر کرد. اما مرد سر حرفش ایستاد و مثل یک سگ دست آموز اونقدر التماس و خودشیرینی کرد تا عاقبت پیرزن تسلیم شد و اجازه داد مرد شب رو توی خونش سر کنه اما به اون گفت که باید روی زمین بخوابی صبح اول وقتم بری پی کارت. مرد پیش خودش گفت همینم از سرم زیادیه. از پیرزن تشکر کرد. اون که آدم شاد و حاضر جوابی بود از سر هم کردن شعر و قافیه های بی سر و تهم خوشش می اومد گفت دراز کشیدن روی زمین و پشت خاریدن بهتر از روی زمین سرد جنگل خوابیدن وقتی وارد کلبه بشدم، مرد با یه نگاه فهمید وضع پیرزن اونقدر هم که وانه بود میکنه بد نیست. فهمید پیرزن پیرزن تمکاریه و خیلی ناخون خوشک و خسیصه. مرد که حالا خودش رو خیلی سر به زیر و سپاسگزار نشون میداد، داد معدبانه از پیرزن خواست اگه امکان داره چیزی برای خوردن شام به من بده. پیرزن جواب داد خوراکیم کجا بود؟ به جون خودت من از صبح تا حالا که بگی یه لقمه غذام نخوردم. مرد مسافر که آدم زیرکی بود گفت مادر بزرگ بیچاره، پس با این حساب من باید از تو دعوت کنم. بیای کمی از غذای من بخوری. پیرزن گفت، تو چیزی برای خوردن داری؟ بیافت که نشون نمیده چیز دندونگیری داشته باشی. خیلی دلم میخواد بدونم کی باید کی رو به شام دعوت کنه. مرد مسافر جواب داد، کسی که به جاهای بسیار دور و نزدیک رفته خیلی چیزا دیده که اگه توی شهر و دیار خودش میمون هیچ وقت از اونا خبردار نمیشد. کسی هم که چیزای زیادی دیده باشه آدم شناس خوبی میشه. فیلم مرده و زندش یه قیمته. حالا یه دیگ به هم قرض بده نن بزرگ. پیرزن که خیلی کنجکاف شده بود دیگی به مرد داد مرد دیگ را پر از آب کرد و اون رو روی اجاق گذاشت بعد اونقدر زیر اجاق رو فوت کرد تا آتیشش حسابی شعله کشید بعد میخی رو که چهار انگشت قدش بود از جیبش در آورد و اون را سه بار دور سرش چرخوند و توی دیگ انداخت زن که از تعجب چشمش نزدیک بود بیرون بزنه با نگاهی مات و مبهوت به کاراش نگاه میکرد. این کارا چیه داری میکنی؟ مرد جواب داد دارم آش میخ درست میکنم. پیرزن تو عمرش چیزای زیادی دیده بود و شنیده بود. اما درست کردن آش با میخ؟ نه. تا حالا یه همچین چیزی نشنیده بود. گفت از اسمش معلوم هرچی هست، مال و فقیر فقراست برای همین باید یاد بگیرم چه جوری درست میشه. مرد گفت، زنی اگه میخواد یاد بگیره چجوری آشمیخ درست میکنه، فقط باید تماشا کنه. بعدش هم سرگرم هم همزدن آش شد. پیرزن چارزانو روی زمین نشست. دستاش رو روی زانو آش گذاشت و با چشم حرکت دستای مرد و که توی قابلمه میچرخی دنبال کرد. مرد گفت با این میخ معمولاً آش خوبی از کار در میاد. اما این بار احتمال داره یه خورده رقیق بشه. چون یه هفته است با همین یه میخ آش درست کردم. برای همین اگه فقط یه مشت، فقط یه مشت آرده بلوت بود که توی اون بریزم دیگه حرف نداشت. اما حالا که باید با همین بسازیم، فکر کردم بهش هم هیچ فایده ای نداره. بعد دوباره مشغول همزدن آش شد. چند لحظه که گذشت، پیرزن گفت راستش فکر کنم یه مشت آرد از یه جایی داشته باشم برات بیارم. بلند شد تا بره آرد رو بیاره. دیگه بهتر از این نمی مرد مسافر همونطوری که آرد رو توی دیگ میریخت به هم زدن ادامه داد. پیرزن هم دوباره نشست و به اون زل زد و نگاهش کرد. مرد بعد از اینکه آردها رو توی قابلمه ریخت گفت: "به به. این آش جون میده برای شام جمع و جور دو نفره. فقط اگه یه تیکه گوشت گوساله سود شده و چند تا سیب هم بود که توش بریزیم." دیگه حرف نداشت. یه غذای اشرافی درست و حسابی می شود. اما حالا که باید با همین بسازیم. فکر کردم به اون هم هیچ فایده ای نداره. فکر پیرزن از شنیدن این حرف خیلی درگیر شد. چند لحظه که گذشت گفت فکر می کنم چند تا زمینی هم یه گوشه گذاشته باشم یا حتی یه تیکه گوشت. بعد هم بلند شد و رفت، گوشت و سیب زمینی رو اوورد و داد دست مرد. مرد گفت دیگه آش بهتر از این هیچ جا پیدا نمیشه. پیرزن گفت راست میگی؟ جالبه فقط با یه دونه میخ. واقعا که اون مرد مسافر چه آدم محرکهی بود. کاملا معلوم بود، جز خوردن و خوابیدن خیلی کارا از دستش برمیاد واقعا که کمی که گذشت مرد مسافر گفت اگه یه خورده جو و یه قطره شیر هم داشتیم اون وقت میتونستیم از خود پادشاه هم دعوت کنیم که بیاد و از این آش بخوره چون بیشتر وقتا شبا ترجیح میده یه کاسه آش بخوره اینو میدونم. چون خودم مدتی زیر دست آشپز شاه کار میکردم پیرزن با دست روی زانوش کوبید و گفت خدای من از شاه میخوای بیاد اینجا یه کاسه آش بخوره واقعا راست میگی وقتی پیرزن فهمید که مهمونش با بالا بالاییها نشست و برخواست میکنه حسابی ترس برش داشت مرد مسافر گفت اما حالا که باید با همین بسازیم، فکر کردم به اونم هیچ فایده ای نداره. پیرزن یادش اومد مثل اینکه یه خورده جو و یکم کم شیر هم داره. البته گفت زیاد مطمئن نیست چون گاو نازنینش تازه زایمان کرده. بلند شد رفت و جو و شیر رو پیدا کرد. مرد هم به هم زدن دیش ادامه میداد و؟ پیرزن هم دوباره نشست و به اون زل زد. بالاخره مرد مسافر میخ رو از توی قابلمه در آورد و گفت: خب، آماده شد. حالا وقتشه که یه مهمونی مفصل بگیری. اما شاه و ملکه هر وقت میخوان از این جور آشا بخورن، یکی دو لیوان آب میوه یا حداقل ساندویچم کنارش میذارن. بعد همیشه موقع خوردن یه سفره هم روی میز پن میکنن. اما حالا که باید با همین بسازیم. فکر کردم بهش هم هیچ فایده ای نداره. خلاصه سرتون رو درد نیارم. حالا احساس تجمل و اشرافی بودن به خود پیرزن هم دست داده بود. پیش خودش فکر کرد اگه برای تبدیل شدن شامشون به شامی شاهانه فقط همون چیزا لازمه یه بار که دیگه اشکالی نداره بهتره این کارو بکنه و با مرد مسافر عدای شاه و ملکه رو در بیارن. یک راست به طرف گنجه رفت و یه بطری آب میوه دو تا لیوان بلو رو کره و پنیر و گوشت دودی و دستمال سفره رو یکی یکی اوورد رو روی میز چید. حالا میز درست شبیه میز شام اشراف و ثروتمندا شده بود. پیرزن توی تمام عمرش چنین غذای مجللی نخورده بود. آشی خوشمزه، تازه، اون هم فقط با یک میخ. فکری که لحظه از سر پیرزن بیرون نمیرفت. اون که حالا طرز تهیه آش خوشمزه و کمخرج و ارزون رو یاد گرفته بود، سر از پا میشناخت. جوری که از خوشحالی نمیدونست چی کار کنه. دوتایی نشستم به خوردن و نوشیدن و اونقدر خوردن که آقه بعد از خستگی از پا افتادن و خوابشون گرفت. مرد مسافر بلند شد بره روی زمین بخوابه. اما پیرزن با خودش فکر کرد. اصلا درست نیست مهمانش اونطوری روی زمین بخوابه گفت. چنین مرد بزرگی حتما باید روی تخت بخوابه. لازم نبود پیر زن خیلی به مرد اصرار کنه. مرد مسافر گفت درست مثل شب عید. به جان خودم که من به عمرم زنی به نازنینی و خوبی تو ندیدم. باشه روی تخت میخوابم واقعاً واقعا سعادت میخوادادم دادم با چنین انسان نازنینی آشنا بشه. مرد این رو گفت و روی تخت دراز کشید و خوابش برد. صبح وقتی مرد مسافر از خواب بیدار شد، اولین چیزی که گیرش اومد یه لیوان بلور پر از قهوه داغ بود. وقتی مرد داشت قهوهش رو میخورد، پیرزن یه اسکناس یک دلاری نو و به اون داد و گفت به خاطر چیزی که یادم دادی هزار بار ازت متشکرم. حالا دیگه میتونم راحت و آسوده زندگی کنم. چون یاد گرفتم چجوری میشه با یه میخ آش درست کرد. مرد گفت راستش کار زیاد سختی نبود. به شرطی که چند تا چیز خوبم داشته باشی که توی آش بریزی. مرد خدافزی کرد و را افتاد. پیر زن که جلوی در ایستاده بود دور شدن اون رو تماشا میکرد و گفت چنین آدمهایی مثل کیمیا کم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه‌هایی از غول ها و کوتوله ها ماجراهایی از جادوگرها سفر به سرزمین‌های جادویی و تلسم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در, ماجر در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از این ها در کانال تلگرامی هزار اف داستان های صوتی.